پیش تسلیمی امروز اهل تبعت گویی از من آزرد خاطر گشته بود چون دائما مرا دعوت به نشستن و به کار مشغول شدن میکرد ولی من تمام روز را تقریبا در وضعیت استراحت گذرانیده بودم مگر یکی دو ساعت از بعد از ظهر که مشکلی در کارم پیش آمده بود امشب من از او تقاضا کرده بودم به اتاقم بیاید که همین کار را هم کرد در این حال که به نظر سرحال و مزاه گو می آمد بازم وقت گوشی می کنی مگر نمیدانی که نمی توانی از زیر بار برنامه متراکمی که برایت طراحی کردهام شانه خالی کنی بیش از آن چه به تصورش را کرد کار در پیش رو داریم حالا به به مقولات این مقوله یعنی خیش تسلیمی یکی از مجادله انگیز ترین مباحثات معنوی است در واقع تنها گروه بسیار معدودی از مریدان من به معنای واقعی کلمه خیش تسلیمی به استاد را میشناسند. شناسند من یک تفور ذهنی از آن دارم سبازار تارس آها این همون جواب متدابر است که همه جستجوگران می‌دهند. جوگران به می گفته مردم درست به هدف زدید و اکثریت بزرگی از جویندگان تصوری محالود از خیش تسلیمی دارند بعضیها میگویند خیش تسلیمی را احساس می کنند برخی هم تنها یک مفهوم ذهنی از آن دارند و اما موفقیت در امور معنوی تماما به همین مقوله خیش تسلیمی نفس به روح الهی را. اگر طالب رشد معنوی در هر یک از طبقات هستی مورد نظر است باشد راه آن فقط از روش تسلیم خیش به استاد حق می باشد تنها با تسلیم کردن نفس روشنگری حکمت الهی و معنویت حقیقی نصیب از خواهد گشت به که باید تسلیم شوی. البته به استاد که در اون آن کسی که در قالب آتما ساروب یا آشک نورانی استاد به زودیت میآید او مهانتا استاد حقیقی است با این وجود می چگونه تسلیم استاد درون اون این یکی از پرز دو نقیز ترین است که در مقابل هر ای قرار می‌گیرد. تقریباً تقریبا هر جوینده حقیقی خدایی در راه خداف نهایی خود یا در طلب اندکی نور که راه را رو روشن کند مستعصد و ناامید می گردد. تنها بهرهی که نصیبش می شود نامیدی بیشتر است. فقط یک راه برای یافت خدا وجود دارد ولیکن تنها افراد پرشهامت ماجراجو و مشتاقان حقیقی او را خواهند یافت راه آسان است به قدری سهل و بدوی که ما بی از آن قفلت می تنها در سکوت بنشین و با شیرینی و با تلاشی بی تلاش به درون چشم منابیت نگاه کن و حدید خواهد آمد پس از مدتی گوش درونت هم به روی جریان صوتی باز شده و بعد از آن است که شکل نورانی استاد ظاهر می شود از این هم ساده خب تا اینجا که آسان بود اما هنوز به استاد تسلیم نشده این آری می استاد را در زندگی خود داشته باشیم و تسلیم او نباشیم این از ضد و نقیز بودن طبیعت خداست داشتن خدا بودن در خدا و در این حال نداشتنش تا تو می توانی استاد را در زندگی خود داشته باشی اما هنوز ممکن است استاد تو را نداشته باشد اگر اندیشه کافی به خرج دهی جواب این معما برایت راحتی روشن خواهد شد اما چند نفر از میان شما حاضرند به این نکته فکر کند آدمی عملا هفته ای یک بار در جماعت کلیسا می نشیند تا بگذارد یک فرد دیگر به او بگوید چه کند او کاخل شده بزی در میان میشها و باید که یک چوپان داشته باشد و وای به حال چوپانی که گلش را به واقعیتی حقیقی راهبری نکند کسی که به زبان دانش واقعی به همان اندازه که با حقیقت عشق و خدا را بر آنان فاش نکند به هر حال جز استاد کسی نمیتواند حکمت و درایت را به فرد ارزانی دارد جستجوگر می میباید با یک اقدام آغاز تلاش خود را در جهت عشق جانسوز از برای استاد اعلام کند یا لاعقل وقت معینی را برای آن تعیین نماید این قدرت متمرکز متوجه هر ذهن، دل و اراده می باشد. جایی که روح خود را به شکل نورانی استاد تسلیم می کند یقینا سوز و سازی در عشق الهی قسمت وی می گردد که تماما برایش مویستر می باشد. فقط آن دا هست کمال ذهن زندگی و کال می‌تواند به ترزیم و ابزار کار استاد شود متکامل متمرکز از خیش و بیگانگی رهیده و پرورش یافته برای خدمت بیدریق برای خدا این منظور با کشتر خیش تحتانی یا نفس برآورده نخواهد شد بلکه با تعدیل کردن و کوشش در برداشت بهترین از آن. کلمه تمرکز یا concentration در میان بیشتر معلمین غلط به کار رفته است من ترجیح می‌دهم از کلمه توجه یا اتنشن استفاده کنم برای بیان بهتر آنچه قصد دارم برای فهمیدن تو ارائه کنم کلمه توجه مناسب‌تر می‌باشد توجه یعنی جهت دادن همه ارکان هوشیاریت به یک موضوع چون آرزوداری این گونه باشد در غیر این صورت تمرکز یعنی وادار کردن اراده به نگاه داشتن توجه روی یک موضوع چه در جهت مساله تو باشد چه نباشد و اما در همین جاست که تفاوت بین آموزش های استادان با سایر فلسطه های ارفانی و اسراری معلوم می شود توجه شما به استاد درون معطوف میگردد به این معنی که میباید به او بیش از هر چیز دیگری عشق بورزی به همین است توجه یک مادر جوان معطوف به چیست بر طفل کوچکی که در دربر دارد عربار که که ای کند و هر جنبشی که برخیزد جان برکف آماده دفاع و حفاظت از او برمیآید تو باید مرا اینگونه دوست بداری راز فیش این است آنچنان با تمام وجود از ای که در اون علاقمند شو که هیچ چیز دیگر برای تفاوتی نکند البته تو مشغول انجام وظیفه خواهی بود بی این که حاصل آن برایت تفاوتی داشته باشد زیرا این منم که از همه جزئیات با باخبرم و حتی نیازهای مادی تو نیز توسط من برآورده میشود. مگر نه اینکه روح استاد در از پرندگان، گلها و همه ی حیات محافظت می کند پس باید در زمره سایر فرزندان شامل حال شخص نیز باشد به خاطر می که ایسا درباره باره زنبقهای درده می گفت که آنان رنج نکشیدند یعنی تحت محافظت خداوند بودند این را میگویم که آنگاه که توجهت بر روی شکل نورانی درون تماما جذب ذهن شود آنگاه که دائماً خیش الهی را در خودش ببینی به معنی جهانهای درون خیش الهی و اینکه آن در همه چیز و تمامی موجودات و وقای حضور مطلق دارد آنگاه معلوم میگردد که قدم در طریق کامل خیش تسلیمی نهاده ای. مضافاً اینکه هرگاه شاهد جذب شدن روح به دل گشته و همه عواطف در نقطه ای آکنده از عشق آن فراهم آید درون کالبد کیهانی و برای کالبد کیهانی آنگاه کاملا تسلیم به استاد شده اید البته این شامل عشق به خیش الهی هم که در همه موجودات قدرت ها و, و شکل های درون کالبد کیهانی من حضور دارد می شود این عشق با اراده نیا می آمی آنگاه تو همیشه فقط قدرت به تنهایی دریافت می کنی و به عنوان نیروی محرکی هر ای می پذیدی آنگاه است که تو به درون کالبد کیهانی هم فرو کشیده شده و با آن یکی می شدی. نزد عارفان این تجربه را وحدت با خدا می گویند طبیعتن پله های بسیاری هستند که جوینده را به هدف خیش تسلیمی نزدیک می کند اما فقط و فقط با وقف کامل خود به مشیت خدا و خود خدا می به مرحله نهایی نرسیدن به این هدف دست یافت رها کردن تنشها و تضادها نخستین قدم در خیش تسلیمی است زندگی خود را به دست استاد سپردن. پرورش دادن نوعی از دانستن است که فراسوی ادراک به واسطه ی حواست می باشد. در واقع همان هنگام که به این درک نائل می شوید که آن زندگی تو را تحت تسلط خود گرفته و در راستای مشیت استاد به کار می‌برد، به من ایمان خواهی آورد این تجربه بسی فراسوی درک این جهانی و دنیای حواس واقع هست. هرگز کسی نتوانسته آن را توضیح دهد یا بیان کند که آن چیز اما با اتکاب دانستن اشراقی یا شهودی خود است که میتوانی بدانی من تو هم و تو منی در عمل ساده است کافیست ابزاری باشی که از میان آن قدرت فلکی با چنان حضوری جریان یابد که بتوانی صدایش را مانند همه بم یک موتور الکتریکی گاهی صدای ناقوس تندر یا تبله های قلطان آنگاه در دستهای من قرار داری تسلیم نفس کار است. با ایمان آغاز میکنی و میگو رشد کرده و به دانستن بدلگرد به رکن خلاقه خود متکی باش درست همان گونه که آینشتاین بود او میدانست چگونه فردیه ای را آرایش دهد كه بازتابندهٔ حالت روندهای درونش باشد او در سکوت ننشست به امید اینکه ببیند خدای این معما را چگونه برایش حل میکند او با فرایند امتیازاتش اقدام به تعیین نقطهای نمود که در آن خویش را به روندهای خلاقه درونش تسلیم کند ابتدا میباید با آرزو و رکن خلاقه آغاز نمود منظور متخیله نیست بلکه استفاده از قدرت کیهانی یا فلکی مورد نظر است اگر میل داری میتوانی آن را نیروی خلاقه بنامی با کمک آن آنچرا که یک زندگی در خدمت استاد ایجاب می کند درون خود بسازی پس بس بگذار از اینجا آغاز کنیم در این نقطه ما استفاده از تلاش درونی غریزه و ابتکار خود که به هر حال برای انجام هر حرفهی که در زندگی روزمره خود داریم ضروری است آغاز می برای مثال ما نمی باید همه چیز را به احطه استاد واگذار کنیم چون همه مطابق قانون معنوی باید به اراده آزاد خویش عمل کنند. اگر دست به کار نوشتن یک کتاب شویم باید موضوعش را انتخاب اطلاعات مورد نیاز را فراهم و شکل کلی آن را هم تعیین نموده باشی بعد از آن لازم است فسرهای کتاب را تعیین کنی و طوری در کنار هم به که پیوستگی و تسلسل موضوعات مثل دانه های تسبیح روی نخ روان باشد واگردار کردن به استاد به معنی سرس نظر کردن از اراده آساد نیست بلکه استفاده از آن نراستای تدبیر الهی خداوند می باشد زیرا همانطور که در مورد کتاب نوشتن اشاره شد تو منافع خیش را گروی هستی خداوندی نهاده ای. تمامی توجه هست را به خدا معطوف کن و در این صورت تو در پیروی از دستورالملهای حاصل از حکمهی برنامه ریزی می کنی که من در جهانهای درون به تو ارزانی می کنم و اما ببینیم روکن خلاقه و اراده آزاد را کجا باید به کار گرفت مانند سایر ارکان طبقات درون هر یک از اینها از مجرای منحصر به خود تبدیل به بلغوبه های جهان بیرون می گردد. یک مجرای ظهور برای رکن خلاقه و یک مجرا برای اراده آزاد تدبیر گشته است اگر به مراقبه ونشینی و منتظر شوی تا سفیر روح بیاید و تو را به سیاحت اقالیم کیهانی ببرد به احتمال زیاد ناامید خواهی شد بنابراین تو می باید با استفاده از اراده آزاد تعیین کنی می خواهی تحت راهنمایی استاد به کجا بروی و در آنجا چه انتظاری داشته باشی به طور معمول اگر استاد احساس کند تحقق آنچه آرزو کردی برایت آموزنده باشد اراده تو را اجابت خواهد کرد از طرفی هم استفاده از رکن خلاقه به منظور برنامه‌ریزی و تدبیر برای هر آنچه چه محتمل است در مقابلت پاشد ضرورت پیدا می کند. در عوالم کیهانی همه چیز در انطباق با تجربه یا عقیده توست منظورم این است که مثلا اگر تو آرزو کنی از شیکاگو به نیویورک سیدی بروی، قدرت اراده افرسیدی تو به علاوه رکن خلاقت، به کار میافتند تا تو را به آنجا برسانند ولی هنگام کودکی که چیزی بیرون از واقعیت محیطی خود را شناسایی نکرده بودی حتی باور نداشتی که شهر نیویورک وجود خارجی داشته باشد به این ترتیب تمامی ارکان آفریننده از برای خلق کردن یک تصور از آن به کار گرفته می شدند. آیا منظورم را روشن بیان می‌کنم؟ نصف می باید باور داشته باشی که طبقه دوم، سوم یا حتی پنجمی در جهانهای فلک وجود دارد. ركن آفریننده خود را به نحو مثبت به کار بگیر تا ببینی یا بیاندیشی آنجا چه هست و از اراده آزادت برای تصمیم به سفر به آن استفاده کن. آنگاه قدرت ارادت را به کار گیر و این حکم را بر خود واجب بدار که بدانجا برسی. مگر اینکه معلمت فرمان دیگری برایت داشته باشد با استفاده از این ارکان سگانه در بشر که دائما توسط قدرت خداوندی تأمین می‌گردد می‌توانی عملا طراحی اراده آزادت را به دست گرفته معین کنی آیا میخواهی از روندی که من برای تو تعیین کردم پیروی کنی یا نه تو خود ارباب خیش و حاکم بر زندگی خیش می‌باشی تنها آنگاه که اراده آزاد خود را هماهنگ با حیات الهی شکل دهی به معنای واقعی در مسیر روح قرار گرفته ای اراده آزاد تو تعیین می کند که زندگی تو را به دانجا کشاند که تسلیم کامل خود را به استاد به جا آوری. آیا منظورم روشن است؟ پس بگذار این را هم بگویم از اراده به قدرت هیچ کس نه هراست. تو می توانی همه ی را در کمال وقار و خونسردی اراده کنی. در این حین من اجازه نخواهم داد کسی به تو آزاری رساند. هیچکس کس قادر نیست تو را بیازارد چون تو تحت محافظت و مراقبت من مشغول به کار می باشی. روح الهی دائما از تو محافظت می کند و به این روند ادامه خواهد داد. در اینجا بحث امروز را خاتمه می دهیم. شب خوش.